بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله رب العالمين والصلاة والسلام على أشرف الأنبياء وسيد المرسلين والآل والصحب أجمعين أما بعد التوصية رام قبر ذيك بحث نشانها يقمر وإذا ما بديت قدي التوصية فشكي فنحن نم إنتوصيي خصنا الآن در موقعتي كلام ما دريش بسالمي باري كا درش هر روز ما سایل مدرنی دارده استاریم از موبایل‌ها ها و کامپیوترهای های مختلف و تبلت های مختلف این توصیعی کچیکی فقط از باب التزام به سنت رسول الله علیه صلی و السلام. وسلم میدونید فرق ما اهل سنت و جماعت با غیر اهل سنت و جماعت در التزام به سخنان رسول الله صلی اللہ علیه وسلم و در اتباع از روش رسول الله صلی اللہ علیه وسلم اولوی ماست در رفتارش لوگووی ماست در کردارش در اون چیزی که به ما فرمودن ما وظیفه الارتظامه تا اوائ که الذي هدا هم و مااف بهدا مختلفف و نه اون هدا شدن الله میامبران پیشیم و خود رسول الله عليه اسان تو واصلن دقد كان العل في رسول الله عث حسن الگووی یکی برای ماها روزی ع مزوب میگو نشاسب دم الأطاق كنورة أطاق عائشة رضي الله عنها أم حرف هارف حرف دم, دم. سدى يمر عائشة رضي الله عنها سنين كفر يا عري ألا تريف كاتبك فإن رسول الله صلى الله عليه وسلم لم يكن ينام قبل العشاء الآخرة ولا يتحدث بعدها ای عوری نمیخوای کاتبه تو موکل فرشته تو راحت بذاری یکم که اعماله منو بنویسه اعماله خوبتو بنویسه یکم اون راحت بذاری از باب سرزنش داره میگه از باب نکوهش نه اینکه الله فرشته دست از قلم برمی یا خسته میشه بحث سرزنشه نکوهشه نمیخوای دست از سخن بکشی رسول الله صلى الله عليه وسلم قبل نماز إشار نمي خالي وبعد نماز إشار صحبت نمي كاري وعمر بن خطاب مبياد رسول الله صلى الله عليه وسلم اگر قرار بود بيدار رشد بعد إشار بأو بكر صديق ومن مينشش بأمر من أمور المسلمين بأمر من أمور مسلمين براية بحث نصیحت برای امت رسول اسلام علیه الصلاه و السلام امت رسول الله علیه الصلاه و السلام برای نصیحتشو مینش برای یافتن راه یا راهکارها برای امت برای نصح امت می نشسته هدف دین بود هدف اصلاح بود نیک اینکه انسان بشینه بعد از نماز عشا با موبایل و با این حرف بزنه با اون سفن بزنه به قول معروف در این گروه و در اون گروه هیچ چیزی هم گیرش نمیاد نما منفعت الدنيا بي داره نه أخرى اخرى بي روایت رسول الله عليه الصلاه والسلام بي فرلا سنرى سنرى سمار يعني شب نشيني كسي شب نشيني بكنه بي بيشيني فقط براي سلطان بفتن و شب يداري كردن فقط براي سنة كارو ديونو فرض رخسه براي نماز گذار اول لمسافر كسي كه ميخواد مسافرت بره و برای یه شکل کسی که داماده به قول محروف کسی که میخواد همبستری بکنه با, با همسرش برای این سنفر درسته ولی در غیر این سمر نه میکنه از سمر از بیدار موندن از نشینی چقدر ما نشینی میکنیم چقدر میشینیم خب لازمه چی وقتی که نشینی بشه یکی از سنت های مؤکده معامل قیام اللی از زندگی من بشه الله <سؤال> اللیل یک تره نماز تجه صبح که رسول الله صلی اللہ علیه وسلم دعا فرمیدن دعا کردن در حق امت که برکت افتاده بشه در وقت بکورش اول وقت صبح محخابی سر کلاس چورت میزنیم رسول الله صلی الله علیه وسلم فرمودن برکت امت در اول وقت اول وقت من ما استفاده میبریم اول بعت از صبح ما متاسفانه خوابیم باید اصلاح بشیم باید اصلاح بشیم اصلاحش هم اینه که ما بقول مرب خاموشی بزنی و شب بخوابیم از سخنهای بیدوده پریز بکنیم من حسن اسلام المر تر کمالا یعنی از اسلام نیکی یک شخص نیک بودن اسلام شیه اون چیزهایی که بشرف نداره بله کنه چیزهای بیدوده فضولی در این گروه حرف زدن و اون گروه حرف زدن و نمیدونم بحث ها و جدال و مرار که همه اینها در دین مزمومه جدال و مرار طلب علم که نیست سلاوت قرآن که نیست باور بکنی اینقدر که ما این پیامت ها رو می در این وسایل، قرآن رو تو زندگی من نکنیم در همین شن که این وسایل آمده آره ساید بعضی ها حافظ قرآن, قرآن خودن بحث من اونها نیست بحث که الان به معروف، تازه وارد این مجال شدن و دارن هی میخونن، هی میخونن خودت هم که چی دارن میخونن هر روز یک بحثی و یک مبحثی اصلا معلوم نیست غیبت، تهمت، نمیمه، بدی همه چیز روش هست موازد باشید و توصیه رسول الله صلی الله علیه وسلم جلوه بذارید فإن رسول الله عليه الصلاة والسلام لم يكن ينام قبلها أولا لأشياء نمي طويلة ولا يتحدث بعدها وبعدت أشهر نمي زادان وخدام رسولين فعله فقوله غفتان رسول الله صلى الله عليه وسلم لا سمر إلا لثنتان لمصلئ أو مسافر شاب يدري درسيس مجرد رأيكسي كير می خواهد مسافرت بره یا خواهد نماز می این از با به توصیه؟ توصیهات من نیست. توصیهات رسول الله علیه السلام است. اما سخنانم و پیرمونه نشانه های قیامت حدیث اعداد بین سته ما می خواهم را میخوام خاتمه بدیم. تا نشانه را به شما از وفات رسول الله تا آخریش موند که میخوام شرحش بدیم توضیحش بدیم. آخرین مطلعی که از نشانهای های که رخ خواهد داد ولی هنوز رخ نداده. اون نشانه هایی که ما گفتیم رخ داده بود، ما اون ها را زدیم از طول تاریخ و از آن چیزی که شده بود. یک نشانه فقط مونده، اونم نشانه آخرین ثُمَّ حُدْنَةٌ تَكُونُ بَيْنَكُمْ وَبَيْنَ بَنِي الأَصْفَرِ. حُدْنَة یعنی صلح. صلح بین شما و بین بنی الاصفر یعنی روم، رومی ها، اروپایی ها، غربی ها خواهد شد. فیغبرون غرب میکنن فیاتونکم تحت ثمانین و تحت کل غایه او رایه اثنی عشب و الف جنده پشت سر اشتات پرچم بیان پشت سر هر کدوم از این پرچم ها دوازده هزار سرواز هستن میان به جنگ شما حالا این کیخ رو خواهد داد ما احادیس پیرامونی این قضیه زیاد داریم در بحث فتح اروپا فتح قسطنطینیه فتح قسطنطینیه رخ داده ولی بله فتح اصلی هنوز مونده چند تا جنگ میشه بین ما و اروپایی ها در چندین حدیث این بحث اومده بار اولی که جنگ میشه بین ما ها و اونها ما و انها هم پیمانی با هم ضد یک دشمنی می جنگیم همونطور که در حدیث از رسول الله علیه الصلا و السلام داریم که نسش جبراتو عن انجبره بن يقر ان ذا مخبر ابن اخي نجاشی حدثه ان سمع رسول الله صلی الله علیه و سلم میقول ستصلحون روما رو رو رو صلحا امینا هم پیمان میشید صلحی برقرار میشه بین شما و روم حتی تقضو انتم وهم هم عدو من ورائهم شما با آنها هم میشید و با, با دشمنی که دشمن مشترک شما ها هست با آنها میجنگید فتونسرون شما نصرت میگید پیروز میشید هر دو تا گروه شما وارونی ها و تسلمون و تغنبون اونجا سالم میمونید پیروز میشید همیمت و همیمت گیرتون میاز حتی تنزلو به مرجن تا اینکه که به عریق ترزمین شما می جمع می فیقول قائل من الروم غلب السلیب صليب هست که پیروز شد این نصار پیروز شدند این ما بودید که پیروز شدند نصار ها می ویقول قائل من المسلم بل الله غلب و یتلاولون لها بلکه قدابند هست که اینجا رو پیروز کرده و سلیبهم من المسلمین غیر و بعید و اون که هست که بالا گرفتن و گفتن که صلیب هست که پیروز شده از مسلمانها هم دور نیست، شخصی از مسلمانها بلند میشود و صلیب را فورت میکند. فیثوروا إليه رجل من المسلمین فيذوقه و الى إلى كاسر صلیبهم فيضربون عنقه. ام شخص جاهنشرمیدن، ام شخص از مسلمانها که بلند شد صلیب فورت کرد. و المسلمون إلى اسلحتهم مسلمانها هم جمشن، اسلحه را بدسمیرن، فيقتلىون، فيقرب الله تلك العصابة بالشهادة. اونها هایی که هم پیمان ها شده بودند اونجا کشته میشن و خداوند شهادت نصیب آنها میکند فیتون ملکهم اون نصارا اون اهل صلیب میان به پادشاهشون فیاقولون کفیناک جزیره العرب کفیناک جزیره العرب ما ترکتویت کردیم از های جزیره العرب شر شنو كم تريدون بقوله معروفة؟ فيجتمعون للملحمة الكبراء يقول الملحمة، انجا هزك براي جنج بزرگ كبين مسلمان ها وروم بأهل السليب ونصارا هزك انجا مسلمانات جمع بشن باين قتال بزرگ كف تحت ثمانين غاية انجا هزك پشت سره هشتات وفرچم تحت كل غاية اثنين عشر الف اثنين عشر پشت سر هر پرچمی از این پرچم ها دوازده هزار سربازه این ملحمه کبراه هست که بعد از اون دیگه بحث دیگه میشه که انشالله در بحث نشانه های بزرگ به قیامت بحثش خواهد شد بحث خروج دجال و وقتی که روم و اروپا فت میشه روم ها ایتالیا هست اونجا که فتح میشه دیگه اونجا وقتی که مسلمان ها پیروز میشند شیطان فریاد می که این مسلمان ها دجال بیرون اومده دجال هنوز بیرون نیومده و بعد مسلمان ها بر می به خانه هایشون بعد دجال ظهور می‌کنه. این مراحل ما بعد دجال و بعدن ذکر کرد فقط این قسمت از حدیث مونده بود و اونم بحث اینکه ما, ما در صلحی به سر می الان بین ما و نصارا هست جنگی نیست بین ماها، ها اونها غد می اون به جنگ ما میان مسلمان‌ها. که در اون لشکر و در اون سپاه بودن کشته می شوند. سپس مسلمان ها باز با دیگر جمع می شوند. که در روایت اومده که نصارا بعد از این که برمی نه ماه برای سرکول کردن مسلمان ها نه هم همونطور به جریع نه ماه در شکر مادر به سر میبرند برند نه ماه برای سرنگونی اهل اسلام جمع می شوند. سپس با این عبضه به سراغ مسلمان ها به مناوزه مسلمان ها اونجا هست که مسلمان ها عدهی ای سپاه یمن عدهی ای سپاه دیگر از مدینه منوره مدینه نبوی مدین شهر و الله علیه الله و سلام از اونجا دو تا ارتش از اسلام از مسلمان ها بلند میشن برای نصرت اسلام نصرت اون که کشته شدن در جنگ اولی که بین نصاران قدری که کردن و مسلمان ها رو کشتن اون ارتش و اون سفاهیان هم تو که در احادیث صحیح رسول الله صلی الله علیه و سلم اون ارتشت جمع میشن که هم کم نیست اهل اسلام مسلمان ها جمع میشن و با اونها میجنگن و اونجا هست که خداوند اون تایفه و اون گروه از مسلمان ها و پرچم جهاد را بالا بردن اونها را خداوند مسرک میدهد از باب توصیه ختام بحثم اینو بگم که مسلمان عزت داره و عزتش در کلمه توفیدی که در قلبش هست لا اله الا الله که برای اون زندگی میکنه و برای اون از دنیا میرود اون چیزی که مطرح براش در زندگی در اسلامش کلمه لا اله الا الله دعوتش و زندگیش، نمازش، روزش و جهادش همش بر خاطر کلمه توفیده خاطر اعدای کلمه توفید بخاطر خدا شناسی و به خاطر پرسید و این که سلیمی پرسیده نشه و بودی پرسیده نشه ما مسلمان ها وقتی کتاب مدید وقتی که شعیری جهاد که رسول الله صلی الله علیه وسلم امرت ان اقاتل الناس حتی يشهد ان لا اله الا امرت ان اقاتل دستور اثرت خدا که دینش را برپا بدارم دین اسلام را برسولم وقتی که ما مسلمان ها در نفسمون تزلزل پیدا کردیم دوچار دو حزیمه نفسی شدیم شکست نفسی اسلاممون برامون نایند شد اسلام برامون زشت شد، رومون نمیشه بگین مسلمونیم رومون نش... نمیشه ریش بذاریم. رومون نمیشه شلوالهامون پیراهنمون کوتا ها بشه. اسلام برامون زشت شده. اسلام برامون یه چیزی ننو شده. رومون نمیشه اسلاممونو رو ابراز بکنین نمازمون روزمون. یا بچه ننه بهمون میگن یا تااس بهمون میگن یک لقبی رو بهمون میدن یا بهخوااوی بهمون میگن یا به لادن بهمون میگن یا. به بهمون میگه یک حرفی یک لقبی بهمون میگه که سبب میشه در نفس خودمون این احساس شکست را بکنیم احساس شکست نکنید این کلمه اسلام کلمه لا اله الا الله است که شما را عزت داده و ماها را عزت داده احساس عزت بکنیم با کلمه توحید کلمه لا اله الا الله بخاطر الله اگر می‌جنگیم بخاطر الله اگر نماز میکنیم به خاطر کلمه الله الله الله کوچکش مریدون اون اللهی که برای اون نماز میخونید و روزه میگیرید و عبادت و طاعت و طلب علم را انجام میدید این متوجهش بشید چون ماها مسلمان ها وقتی که رومون من حجوم رو غرب با توطعه ها به اسم زن به اسم آزادی به اسم عدالت چی شد؟ اون زنمون من حجاب شد مثل پوسته فیاز پوسته، اون معروف چادر های نازک، نازک. و نمیدونم بعد حجابی ها اون روشیدن مشروب و نمیدونم مشروبات الکولی نه دیگر چیزهایی که الان ما در جامعه می‌بینیم چرا؟ چون اسلام زشته چون اسلام برای شده ننگ عزت در چیه مشروب کردن؟ در بعد حجابی، اون دختری، اون خانومی، اون خواهری که میخواد خوشحجاب بشه خدا رو راضی نگه بداره در میان مردم چی میشه؟ زشت میشه؟ میشه، ما هم همین عزت داشته باشیم اسلام عزیزه احساس عزت داشته باشیم اونها هستن که خدا ازشون راضی اونها هستن که خدا را ناراحت کردن ولی ماها خدا را از خودمون راضی نگه می‌داریم واخر دعوانا الحمدلله رب العالمین صل الله علی محمد و علی محمد